به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده محمد علوی سلام و عرض عدب خدمت همه شنوندگان محترم کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه با شما هستیم با یکی دیگه از داستان کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران و اما این جانتیق و چلگیس چلگیس یکی از مراد و مطلوب های قهرمانان قصه های ایرانیه تو این قصه چلگیس نماد طبیعت بخشنده است تارهای مویه او میتونه درخت های رو تازه و پرسمر بکنه قهرمان قصه هم تولدی خارق العاده داره که به نوعی اندیشه ی اساطیری رو توی این قصه نشون میده. پادشاهی بود که بچه دار نمیشد. یک روز درویشی به قصر پادشاه اومد و یک سیب به زن پادشاه داد و گفت نصفش رو خودت بخور و نصف دیگر رو به پادشاه بده تا بخوره. اینطوری حتما بچه دار میشد. زن پادشاه رفت برای درویش طلا بیاره. وقتی که برگشت دید که درویش نیست. زن به گفته درویش عمل کرد. بعد از این خداوند به اون پادشاه یک پسری داد. اما بچه مشکل نفس کشیدن داشت. هرچی که دارو درمان کردن و طبیب آوردن ای نداشت. فردای روزی که بچه به دنیا اومد درویش پیدا شد و وقتی که ماجرا رو دونست پرسید وقتی بچه به دنیا اومد چیزی همراهش نیومد گفتند یک تیغ اومد درویش گفت تیغ رو سوراخ کنید و به گردن بچه بندازید اونها هم تیغ رو سوراخ کردند و با نخی به گردن بچه انداختند بچه شروع به نفس کشیدن کرد و گریه کرد اسم بچه را گذاشتند جانتیق چون هر وقت تیغ و از گردنش درمیاوردن بچه بیهوش می شد و نفس نمیکشید سالها گذشت و جانتیق بزرگ شد روزی پدرش کلید باهاش رو به جانتیق داد و گفت با دایت برو و باغ ها رو تماشا کن. جانتیق به همراه دایه رفت و یکی یکی باغ ها رو گشتند. کلید یکی از باغ ها نبود. جانتیق دایه رو فرستاد تا کلید اون رو از پادشاه بگیره. دایه که رفت جانتیق در باغ رو شکست و وارد شد. باغ هیچ زیبایی به خصوصی نداشت. فقط یک پردهی روی دیوار آویزان بود. جانتیق جلو رفت و پرده رو کنار زد. عکس دختر زیبایی بود که چهل گیس بافته داشت. جانتیق بیهوش شد. دایه به همراه پدر و مادر جانتیق به باغ اومدن و اون رو بیهوش دیدن. وقتی پسر به هوش اومد اسم و شعن دختر رو پرسید. پدرش گفت اون چه چهلگیسه من سالها تلاش کردم و نتونستم اون رو به دست بیارم هرکس به دنبال اون رفته دیگه برنگشته نگشته جانتیق تصمیم گرفت بره و صاحب عکس رو پیدا کنه و بیاره پادشاه که اصرار پسر رو دید دو سوارکار در رو همراه اون کرد تا تنها نباشه اونها رفتند و رفتند تا شب شد جای افتراق کردن تا صبح دوباره به راه بیفتند صبح جانتیق از خواب برخاست و دید که همراهانش نیستند فهمید که به سفارش پدرشون اون رو تنها گذاشتن تا اون منصرف بشه جانتیق به راهش ادامه داد نزدیک ظهر دید که یک سوار از مشرق و یک سوار از مغرب به طرف اون میاد وقتی اونها رسیدن جانتیق از اسم و مقصدشون پرسید. اسم یکی دقیق شمار بود. اون گفت شبها ستاره ها میان و دقیقه های اونها رو میشمارم تا ببینم کدوم یکیشون زودتر میان. سوار دیگه گفت اسم من ستاره شماره. کار من دیدن ستاره ها و شمردن اونهاست. دقیق شمارو و ستار شمار هم برای پیدا کردن چلگیس می رفتن. هر سه نفر با هم دست برادری دادند و همراه شدند دو روز راه رفتند تا آتشنه و گرسنه به کشور دیگری رسیدند. در اونجا دختری دیدن که یک مجمع غذای جور, جور روی سرش گذاشته بود و گردون به سمتی می رفت جلوتر از دختر هم یک پسر خوشگل راه می رفت. جانتیق بعد از پرسجو از دختر فهمید که اجده جلوی آب رو گرفته و مردم هر روز باید یک پسر به اون بدن بخوره تا اجازه بده اونها کمی آب بردارن. امروز هم نوبت پسر پادشاه و دختر غذاها رو میبره به اجده بده تا موقع خوردن برادرش اون رو کمتر عذیت کنه. جانتیق به دختر گفت تو قضاها رو به ما بده تا بخوریم. من به جای برادرت میرم تا اجده ها من رو بخوره. مجمع غذا رو از دختر گرفتن و شروع کردن بخوردن. بعد جانتیق شمشیرش رو کشید و رفت سراغ اجده ها و اون رو کشت. از بینی اجده ها یک کبوتر بیرون پرید. رفت روی درختی نشست و گفت جانتیق الهی عاقبت به خیر نشی. من میخواستم پسر پادشاه رو بخورم و از اینجا برم پادشاه اون کشور وقتی فهمید که جانتیق اجده رو کشته میخواست دخترش رو به عقد اون در بیاره اما به اصرار جانتیق دختر رو به ستاره شمار دادند و هفت روز و هفت شب جشن عروسی به پا بود جانتیق با دقیق شمار راه افتاد و بعد از مدتها به کشور دیگه ای رسیدند شب شده بود اونجا میهمان پیرزنی شدن صبح که از خواب پا شدن دیدن پیرزن گریه میکنه علت رو پرسیدن پیرزن گفت: زمینهای های زراعتی ما اون طرف دریاست هر سال جوان ها میرن گندم ما رو درو میکنن تا بیارن اما موقع برگشتن کشتی قرق میشه و جوان ها می میرن امسال پسر پادشاه هم قرار همراه جوان بره برای همین مردم گریه میکنند. جانتیق به قصر پادشاه رفت و از اون اجازه گرفت تا همراه جوون ها بره حرکت کردند و رفتند و به اون سوی دریا ها رسیدند گندم ها رو درو کردند و باز با کشتی برگشتند موقع برگشتن جانتیق دید که یک اجده از زیر آبها ها بیرون میاد. با شمشیرش زد و اجده ها کشت یک کبوتر از بینی اجدها بیرون اومد پرواز کرد و گفت جانتیق الهی آقابت به خیر نباشی کشتی و سواراش همه به سلامت به مقصد رسیدند. پادشاه خواست که دخترش رو به عقد جانتیق در بیاره اما به اصرار جانتیق دختر پادشاه به عقد دقیق شمار در اومد هفت شب و هفت روز هم جشن عروسی بود جانتیق تک و تنها به راه افتاد و رفت تا چلگیس رو پیدا کنه به شهری رسید خسته و گرسنه بود صدای مردی رو شنید که میگفت خدایا پیدا نکردم پیدا نکردم تا چشمش به جانتیق افتاد گفت آها پیدا کردم بعد رفت به طرف جانتیق و گفت آقا بفرمایید امروز نهار مهمون من باشید جانتیق دلیل حرفای مرد رو پرسید گفت پدرم گفته وقتی میخوای نهار بخوری تنها نخور حتما یه مهمون داشته باش این بود که شما رو دیدم گفتم پیدا کردن جانتیق به خونه مرد رفت مرد از جانتیق مقصدش رو پرسید جانتیق گفت برای پیدا کردن چلگیس میرم مرد گفت مادر من یه زمانی دایی چلگیس بود جانتیق گفت پس بپرس چطور میتونم اون رو پیدا کنم و الا ناره میخورم مرد از پیرزن پرسید پیرزن گفت من اگر بگم سنگ میشم فقط وقتی که تنها باشم و با خودم حرف بزنم و کسی به حرفام گوش بده میتونه چلگیس رو پیدا کنه. به شرط اون که من نفهمم که اون به حرفام گوش میکنه. جانتیق چیزی نگفت و نهارش رو خورد شب مرد صابخونه رفت به دیدن یکی از دوستانش. جانتیق هم به پیرزن گفت من میرم بیرون و یک ساعت دیگه برمیگردم اما بیرون نرفت و در گوشهای پنهان شد پیرزن مشغول انداختن رخت ها شد و با خودش حرف می‌زد و می‌گفت: مگه پیدا کردن چلگیس به این آسونیاس تا حالا هزاران شاهزاده به خاطر اون سنگ شدن هر کس بخواد چلگیس رو بیاره باید هفت دونه خورما دو سیر نبات یه بسته تیق مقداری نمک و یک کوزه آب همراه خودش برداره هفت شب و هفت روزم راه بره تا به یه جنگل بزرگ برسه بعد باید بره و بالای بلندترین درخت جنگل هفت دیو میان و به درخت میگن ای درخت هر سال به ما میوه میدادی امسال چی میدی؟ اون وقت باید هفت دونه خورما رو جدا جدا روی زمین بندازه هر کدوم از دیوها یه خورما رو میخورن و مدت هفت شب و روز به خواب میرن دیوها که به خواب برن باید از درخت پایین بیاد چلگیس توی گوش دیو سفیده هفتی که از نبات رو نزدیک گوش دیو سفید بندازه چلگیس از گوش دیو سفید بیرون میاد تا نبات رو برداره. کسی که رفته اونجا باید چلگیس رو بگیره. اگر بار اول نتونه از پا تا کمرش به سنگ تبدیل میشه. دفعه دوم باید نبات رو دورتر از گوش دیو بندازه. اگر این بار هم نتونه چلگیس رو بگیره همه ی بدنش سنگ میشه. ولی اگر گرفت پاهاش هم به حال اول برمیگرده. جان همه ی حرفای پیرزن رو شنید. از خونه بیرون رفت و نیم ساعت دیگه برگشت. روز بعد از پیرزن و پسرش خداحافظی کرد و رفت و همه چیزایی رو که پیرزن گفته بود خرید و راه افتاد. رفت و رفت تا به جنگل رسید. همه کارهایی که پیرزن گفت انجام داد. بار اول که چلگیس از گوش دیو سفید بیرون اومد نتونست اون رو بگیره و پاهاش سنگ شد اما بار دوم موهای دختر رو گرفت و دیگه نگذاش به گوش دیو سفید برگرده دختر داد و فریاد را انداخت جاندیق گفت من اومدم تو رو نجات بدم اسم من جانتیقه اونها سوار اسب شدن و به تاخت رفتن چلگیس به جانتیق گفت تو نباید پشت سرت رو نگاه کنی وگرنه سنگ میشی چلگیس پشت سر رو نگاه میکرد که دید دیوها دارن میان از جانتیق پرسید همراهت چی داری گفت تیغ بعد تیغها رو به دختر داد دختر تیغها رو روی زمین ریخت و گفت از خدا میخوام که یک کوه بزرگ تیغ بین ما و دیوا درست بشه یک دفعه یک کوه بزرگ از تیغ درست شد دیوها به هر زحمتی که بود از کوه تیغ رد شدن این بار دختر نمک رو از جان تیر گرفت و به زمین ریخت کوهی از نمک درست شد تا از دیوها از شدت درد مردن یکی از اونها باقی موند. نزدیک بود به دختر را به سر برسه که چلگیز کوزه آب رو به زمین زد و یک دریای بزرگی درست شد. دیو از دور پرسید جان چطور از دریا رد شدی؟ جانتیق تیغ دهنه کوزه رو که به شکل یک سنگ سوراخدار شده بود نشون داد و گفت اون سنگ رو میبینی؟ سرت رو توی سوراخ اون بکن و بپر این طرف دیو سرش رو توی سوراخ کرد سنگ توی دریا فرو رفت و دیو رو هم با خودش به ته دریا برد جانتیق و دختر روزها رفتند و رفتند تا اینکه چلگیس گفت بیا اینجا چادر بزنیم ما باید چهل روز اینجا بمونیم تا من هر روز یکی از گیسهام رو شستشو بدم اونجا چادر زدند روزی چلگیس به جانتیق که کنار چاه ایستاده بود گفت دو تاره موی من کنار چاه افتاده، اونها رو بردار و بیا این طرف و الا برات درد سر درست میشه جانتیق اوقاتش تلخ شد موها رو برداشت و دور یک تکه فلز پیچید و اون رو انداخت توی چاه آب چاه میرفت به باغ پادشاه اون کشور یک روز باغبان شاه به باغ رفت و دید که همه درختها ها میوه شدن و هر کدوم با صدای بلند میگن از میوه من بخور باغبان رفت و پادشاه رو خبر کرد پادشاه گفت بوی چلیس میاد همه جای باغ رو بگردید و هرچی پیدا کردید به من بدید گشتند و اون فلزی که موی چلگیس دورش پیچیده شده بود پیدا کردند و به پادشاه دادند. پادشاه گفت این موی چلگیسه، برید بگردید و چلگیس رو پیدا کنید. این خبر به گوش پیرزنی رسید. رفت پیش پادشاه و گفت من چلگیس رو پیدا می کنم پادشاه گفت تو چلگیس رو بیار من هم هرچی که بخوای به تو میدم. پیرزن گفت من میرم. هر وقتی دید که پنبه سوخته روی آب میاد نه رو بگردید و مستقیم بالا بیایید. پیرزن رفت و چادر چلگیس و جانتیق رو پیدا کرد. پیرزن خودش رو به ناخوشی زد. جانتیق اون رو به چادر برد. چلگیس تا پیرزن رو دید با خاکانداز زد توی سر اونو به جانتیق گفت عاقبت این پیرزن کار دستت میده پیرزن چند روزی اونجا من تا اینکه یک روز از دختر پرسید چرا اسم شوهرت و جانتیقه دختر علت اون اسم رو گفت یک شب پیرزن رفت و موقعی که جانتیق خواب بود تیغ رو از گردنش باز کرد و توی چاه انداخت جسد جانتیغ رو هم انداخت توی باقی که همون نزدیکی ها بود بعد یک پنبه رو سوزند و توی آب انداخت مهموران پادشاه پنبه سوخته رو که دیدن پادشاه رو خبر کردن پادشاه به همراه چند سوار رفتن و چلگیز رو با خودشون به قصر بردن چلگیز به پادشاه گفت من باید در ازای شوهرم چهل روز ازادار باشم در این مدت کسی به جز اون پیرزن حق نداره به من نزدیک بشه پادشاه قبول کرد که چهل روز صبر کنه یک روز دقیق شمار پیش ستاره شمار رفت و گفت مدتی ستاره جانتیق دیرتر از ستاره های دیگه بیرون میاد ستاره شمار هم گفت آره منم متوجه شدم قرار گذاشتن برن و جانتیغ رو پیدا کنند ستاره شمار یک چراغ برداشت، رفتند و رفتند و ستاره شمار چراغ رو روشن کرد و به کمک نور اون چادر جانتیغ رو پیدا کردند. به اونجا که رسیدن، نور چراغ یک بار به طرف باغ و یک بار به طرف چاه می افتاد. گشتن و تیغ رو پیدا کردند. بعد باغ رو گشتن. دیدن که جانتیق بیهوش افتاده، تیغ رو به گردن اون انداختن جانتیق بهوش اومد جانتیق وقتی که دید چلگیس نیست فهمید که چه بلایی به سرش اومده هر سه نفر لباس درویشی به کردن و رفتن تا چلگیس رو پیدا کنن فهمیدن که مردم دست دسته به قصر پادشاه میرن تا چلگیس رو ببینن جان تیق با لباس درویشی وارد قصر شد. پیرزن رو دید گفت من درویش هستم اگر ناخوشی داری بگو تا برات دعا بنویسم. پیرزن گفت مدتی سرم درد میکنه. درویش روی یک تکه تک کاغذ نوشت من جان تیق هستم. حالا بگو چطور طور میتونم تو رو نجات بدم. کاغذ رو به پیرزن داد و گفت این دعا رو به هیچ کس نشون نده پیرزن وقتی پیش چلگیز رفت گفت سرم درد میکرد به یک درویشی گفتم دعایی برام نوشت چلگیز کاغذ رو از پیرزن گرفت و خوند بعد اون رو پاره کرد و گفت این دعا خوب نیست من خودم یه دعای خیلی خوبی برات می نویسم بعد روی یک تکه کاغذ نوشت جان من فردا به پادشاه میگم که میخوام به تالار برم و کسی هم حق نداره با من بیاد تو اونجا بیا و منو ببین بعد کاغذ رو به پیرزن داد و پیرزن اون رو توی جیبش گذاشت موقعی که پیرزن میخواست به خونش بره جانتیق اون رو صدا کرد و گفت سرت خوب شد؟ پیرزن گفت نه جانتیق گفت نکنه اون دعایی که به دادم به کس دیگه نشون داده باشی اگر نشون داده باشی تو آخر عمرت سرت خوب نمیشه پیرزن گفت راستش یه نفر اون رو از من گرفت و پاره کرد و این کاغذ رو به من داد جانتیق کاغذی رو که چلگیز نوشته بود گرفت و بعد یک کاغذ بی خودی نوشت و به اون داد جانتیق از پیغام چلگیس خبردار شد روز بعد جانتیق پیرزن رو یه گوشه انداخت و توی همون تالار رها کرد بعد چلگیس رو سوار اسبش کرد و پیش ستاره شما رو دقیق شمار رفت چلگیس به هر کدوم از اونها یک تار داد و گفت در عوض محبت های شما این تار رو داشته باشید توی هر فصلی هر ای که بخواید توی جیبتون پیدا می کنید. اونها خداحافظی کردند و رفتند. جانتیق و چلگیس هم حرکت کردند تا رسیدن به خانه پدر جانتیق. خبر به پادشاه رسید که پسرت برگشته و چلگیس رو هم با خودش آورده. جانتیق و چلگیس به قصر پادشاه رفتند. تاج روی سر گذاشتند و هفت شب و هفت روز جشنه عرصی گرفتن خب همروهان عزیز به پایان این داستان رسیدیم امیدوارم که از این داستان هم خوشتون اومده باشه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها از غول ها و کتوله ها ماشرههایی از جادوگرها سفر به سرزمینهای های جادویی و تلسم شده رفتن به دنیای پریان ماچاجوییی در, در, در, در سرزمین های زیر دریا همه اینها و بیش از اینها، در کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستانهای های سوتی صوتی